این داستان شاهزاده شجاع یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون ای بود که سری نترس و روحیهی ماجره جو داشت آرامش خونه پادشاه باهاش سازگار نبود اون با خودش فکر کرد که بهتر قصر سلطنتی رو رها کنه و به دنبال ماجراهای تازه بره بعد از این تصمیم با پدر و مادرش خداحافظی کرد و سفری رو به دور دست ها آغاز کرد. هیچ براش مهم نبود و که میره از کجا سردر میاره. شاه ساده رفت و رفت تا دیگه رمقی براش نموند. اون برای استراحت جلوی خونهی نشست که بعد معلوم شد خونه قول هاست. شه ساده دلش نمیخواست به خواب بره، برای همین با چشمای نیمه باز دوروبرش رو میپایید. قولها چوگان بزرگی به اندازه قده انسان و گوی بزرگ و حجیمی برای بازی کردن داشتند که وسط حیات بود. شاهزاده چند دقیقه به اونها نگاه کرد. بعد میلش کشید با اونها بازی کنه. اون چوگان رو برداشت و با اونها با تمام قوا به گوی حجیم و سنگین زد. اونو به حرکت شاه شاهزاده از اینکه تونسته بود، گوی رو به حرکت در بیاره شادمان شد و از خوشحالی سر و صدای زیادی به راه انداخت. ها از پنجره سرک کشیدن و به حیات نگاه کردند تا ببینن چه خبر شده. همین که دیدن یه آدم کوچولو با همون قد و قواره آدم کچولوهای دیگه داره با چوگان اونها بازی میکنه تعجب کردن و فریاد زدن آهای کرم کچولو خیال میکنی اونقدر قدرت داری که با چوگان بازی کنه و حتی گوی سنگین ما رو حرکت بدی؟ شاه سرشو به طرف پنجره گردند و به قولها نگاهی کرد و گفت شما دست سپا چولفتی فکر میکنین غیر از خودتون موجود قدرتمند دیگهی وجود نداره؟ چشماتون رو باز کنین و ببینین چقدر راحت میتونم گوی و چوگان رو جا به جا کنم قول از اتاق بیرون اومدن و با تعجب دیدن که شاهزاده چقدر در بازی با گوی و چوگان ورزیده است. بعد از تماشای بازی اون یکی از قولا گفت خوب آدم کوچولو، تو که انقدر زبر و زرنگی میتونی بری سیب طلایی رو از درخت جادو شده بچینی و برای من بیاری؟ جوون پرسید سیب طلایی رو برای چی میخوای؟ قول جواب داد برای خودم نمیخوام. برای نام زدم میخوام. اون خیلی دلش میخواد یه سیبه طلایی داشته باشه. من همه جای و گشتم ولی اونو پیدا نکردم. شاهزاده گفت من میتونم سیب طلایی رو به چنگ بیارم. هرچقدم سخت باشه. دوست دارم موانعو و از سر راهم بردارم. قول گفت به چنگ ووردن سیبه طلایی به این آسونیا که فکر میکنی نیست. شنیدم درخت سیب طلایی توی یه باغه که دور تا دور اون نرده آهنی کشیدن. بیرون نرده ها، حیوانای درنده تمام وقت موازبن که تنابنده وارد باغ نشه. شاه ساده گفت، ولی اونا به من اجازه میدن وارد شم. قول گفت، حتی اگه اجازه بدن، باز هم گرفتاریات تموم نمیشه. تازه وقتی وارد باغ شدی، باید بین تعدادی درختا بگردی و درخت سیب طلایی رو پیدا کنی. بازم مشکلات تموم نمیشه چون روی درخت سیب طلایی حلقه یه که باید دستتو از وسط اون رد کنی تا بتونی سیب طلایی رو بچینی. اگه غیر از این راه دیگه ای انتخاب کنی موفق نمیشی. شاهزاده گفت به هر حال من موفق میشم. شاهزاده با قولها خدافزی کرد و به راه افتاد. از ها و دره ها، از دشت و جنگل ها گذشت تا سرانجام به اون باغ شگفتنگیز رسید. جونورای وحشی اینجا و اونجا کس کرده بودن و به خواب رفته بودن و شاهزاده باید از بین اونها عبور میکرد. شاهزاده این کار را بسیار با احتیاط انجام داد و حیوانا که همچنان در خواب بودند متوجه عبور اون نشدن. بعد از نرده ها بالا رفت و بدون اینکه کسی مزاحمش بشه وارد باغ شد. درخت جادو شده درست وسط باغ بود و سیب طلایی روی یکی از شاخه های اون درخت می درخشید. از تنه درخت بالا رفت دستشو از داخل حلقه‌ای که آویزون بود گذروند تا بتونه سیب طلایی رو بچنه و بالاخره هم بدون هیچ زحمتی اونو چید اما وقتی دستشو پایین آورد حس کرد که حلقه تنگ تر میشه حلقه بازوی اونو محکم در خودش فشرد و یکباره شاهزاده احساس کرد قدرت تازهی وارد رکاش شده در حالی که سیب در دستش و حلقه در بازوش بود از درخت پایین اومد. این بار با قدرت تازهی که در خودش حس می کرد ضرورتی ندید که از بالای نرده ها بیرون بره برای برگشتن راهی رو که به طرف در بزرگ می رفت، در پیش گرفت. در بزرگ باغ با یک تکان ساده باز شد. وقتی از در بیرون می رفت، شیری که منتظرش بود به طرف اون پرید. البته نه از روی خشم و درندگی، بلکه با نرم و خوبی. بعد همانند هم سگی که به دنبال اربابش میره، پشت سر پادشاه براه افتاد. شاهصاده با نهایت سرعت طرف قولها برگشت و سیب موعود رو به اونها داد و گفت دیدی که سیبو بدون درد سر برات تو بردم. قول از اینکه آرزوی دیرینش برآورده شده خوشحال بود. و شتابان نزد نامزدش رفت و سیب سیبو بهش داد. اما نامزد قول که هم زیبا و هم باهوش بود، متوجه شد حلقه روی بازوی قول نیست. اون که می دونست هر کسی سیبو بچینه حلقه اون روی بازوش میمونه، مونه به دیو گفت تا زمانی که حلقه روی بازوت رو به من نشون ندی، باور نمی کنم. این همون سیبی باشه که در انتظارش بودم. قول گفت، باید به خونه برگردم تا اونو برات بیارم. اون پیش خودش فکر کرد، کار آسونیه. به زور هم شده حلقه رو از چنگ این آدم کوچولو در میارم، چه بخواد، چه نخواد. ولی شاهزاده از دادن حلقه امتناه کرد. قول به شاهزاده گفت سیب هر جا هست، حلقه هم باید اونجا باشه. اگه خودتونو بهم به ندی، به زور ازت میگیرم. دعوای مفصل بین قول و شاهزاده در گرفت ولی قول نتونست بر اون قلبه کنه چون شاهزاده از قدرت جادویی اون حلقه مند شده بود. قول که دید زورش نمیرسه به حقه متوصل شد و گفت موضوع اینه که در اثر این درگیری گرممون شده و عرق کردیم. بهتره بریم توی رودخونه آب تنی کنیم. وقتی خنک شدیم دوباره به مبارزه ادامه میدیم. شاساده بدون اینکه فکر کنه کاسه زیر نمک کاسه پیشنهاد و پذیرفت و به طور موقت قبول کرد. اون همراه قول به طرف رودخونه رفت. لباساشو در آورد، حلقه رو هم از بازواش بیرون آورد و داخل آب پرید. قول در یک چشم به هم زدن حلقه شاهزاده رو برداشت و به سرعت از اونجا فرار کرد. ولی شیر بدون اینکه دیده بشه از مخفیگاه خودش اوزار و زیر نظر داشت و در یک جهش برقاسا قول و به چنگ آورد حلقه را ازش گرفت و به ارباب خودش پس داد. قول که وضعیت رو اینطور دید، یه درخت بلود پنهان شد و وقتی شاهزاده سرگرم پوشیدن لباسش بود از پشت چنان ضربه محکمی بهش زد که اون دو تا چشمش نابینا شد. تفلک شاهزاده نابینا کاملا درمونده شده بود و نمیدونست باید چیکار کنه. قول بهش نزدیک شد و در حالی که وانمود میکرد که میخواد اونو به طرف خونه راهنمایی کنه شاهزاده رو به طرف لبه سخری برد. تنهاش گذاشت و خودش برگشت. قول حساب کرده بود اگر شاهزاده فقط دو قدم به سمت جلو برداره با سر به پایین سخر سقوط میکنه و کارش تموم میشه. اون وقت من با خیال راحت حلقه را صاحب میشم. وقتی شیر وفادار دوباره به سراغ شاهزاده رفت لباسشو گرفت و اونو آروم آروم از لبه سخر کنار کشید. وقتی قول برگشت که جسد بیروه شاهزاده رو ببینه متوجه شد تمام ترفندایی که زده نقش براب شده. قول با خودش گفت یعنی yani, یه آدم نیموجبی بر من قول قلبه کرده؟ قول که سخت خشمگین شده بود پرید و شاهزاده رو به چند گرفت و اونو به سمت پرتگاه ای برد. شیرم که از قصد شوم اون با خبر شده بود این بارم نزد شاهزاده رفت و اونو از مرگ حتمی نجات داد. قول و شاهزاده نابینا به پرتگاه نزدیک شدند. قول شاهزاده رو درست لبه پرتگاه گذاشته بود و قصداش برگرده که شیر با یک جهش اونو به پایین سخره پرت کرد. قول با سقوط از این ارتفاع از بین رفت. شیر وفادار اربابشو از لبه پرتگاه به طرف درختی برد که در پای اون نهری با آب زلال جاری بود. شاهزاده زیر درخت نشست و شیر که کنار اون لمیده بود با چنگالهاش به سطح آب کوبید و قطره های آب زلالو به سر و صورت شاهزاده پاشید. همین که چند قطره آب به چشمای اون خورد اندکی از بینایی خودش رو پیدا کرد. در همین موقع پرنده‌ای که نزدیک اونها پرواز می‌کرد به شاخه درختی خورد و داخل نهر افتاد. انگار چشم‌های پرنده هم کم نور شده بود. ولی بعد از اینکه آب به سر و صورتش خورد، مثل اینکه بیناییش رو به دست آورده باشه، تونست به راحتی پرواز کنه و بالای یکی از شاخه‌های درخت بپره. شاهزاده که شاهد این اتفاق بود وارد نهر شد و سر و صورت خودش را با آب شست. وقتی بیرون اومد بینای خودش رو کاملا پیدا کرده بود و چشماش مثل گذشته شفاف شده بود و برق میزد. شاهزاده از رحم و عطوفت پروردگار سپاسگزاری کرد و به سیر و سفر خودش ادامه داد. با شیر وفادارش از دل جنگل ها گذشت و بعد از مدتی به قصر جادویی رسید جلوی در ورودی قصر دختری زیبا نشسته بود که صورتی سیاه داشت او به شاهزاده گفت خاش میتونستی منو از شر پیرزن جادوگر نجات بدی شاهزاده گفت چطور میتونم تو رو نجات بدم دختر گفت کار دشواریه. باید سه شب در سالن بزرگ قصر جادویی بمونی نباید بترسی اگر در برابر اونچه اتفاق میفته محکم و استوار باشی صداد در نیاد و نشون بدی که در مقابل ناراحتی ها خونسرد هستی اون وقت من نجات پیدا میکنم و مطمئن باش که هیچکس به تو صدمه جانی نمیزنه شاه ساده گفت من از کسی ای ندارم و آمادم کارمو شروع کنم بعد شاداب و با روحیه خوب وارد قصر شد هوا داشت تاریک میشد به طرف سالن بزرگ رفت نشست و منتظر شد نیمه های شب سر و صدای هولناکی شنید و کتوله هایی رو دید که از هر طرف وارد سالن میشن اول اونا شاهزاده رو ندیدن و وسط سالن آتشی به کردن و شروع کردن به بازی کردن و شعر خوندن مدتی که بازی کردن یکی از بازنده های بازی فریاد زد مطمئنم یه نفر توی سالن که از ما نیست اگه بلایی سرش بیاد تقصیر خودشه یکی دیگه از کتوله ها فریاد کشید، همونجا پشت بخاری وایسا، میخوام به خدمتت برسم. در این لحظه سر و صداها بیش از اندازه زیاد شده بود، طوری که اگر کسی میخواست با دیگری حرف بزنه باید فریاد میکشید. شاهزاده که ساکت و آرون بود، ترسی به دلش راه نداد. دست آخر کتوله ها که تعدادشونم زیاد بود به سراکول پادشاه پریدن، اونا اونو به وسط سالن کشیدن و زیر مشت و لگد و نیشگون گرفتن. ولی شاهزاده خشم و ناراحتی خودش رو فرو برد و صداش در نیمد. سپیده که زد کتوله ها همه رفتن. شاهزاده همچنان ساکت و بی حرکت افتاده بود و تمام تنش کوفته و بیرمق شده بود. وقتی آفتاب تلو کرد زن سیاه چهره وارد سالون شد. اون زرفی پر از آب شفا بخش در دست داشت و با اون زخمها و تاولهای شاهزاده رو شست. وقتی کار شستشو تمام شد، درتهای جسمی شاهزاده و تمام زخمهاش شفا پیدا کرد و احساس قدرت و ترابتی تازه بهش دست داد. زن بهش گفت، خوشبختانه تو یه شبو با قدرت و مقاومت پشت سر گذاشتی، ولی دو شب دیگه باقی مونده. وقتی زن میرفت، شاهزاده متوجه شد، که پاهای زن سفید شده. شب بعد کتوله ها دوباره اومدن و باز شروع کردن به سر و صدا کردن. بعدم شاهزاده رو این بار شدید و با خشونت بیشتر کتک زدن. ولی شاهزاده همه ناراحتی ها رو تحمل کرد. نزدیک صبح وقتی اونا رفتن همون زن اومد و با همون آب شفابخش اونو درمان کرد. وقتی زن برمیگشت شاهزاده دید که بازوها و گردنش هم سفید شده و فقط صورتش سیاه مونده شاهزاده سومین شب و هم در قصر گذروند کتولها ها وقت اونو دیدن قیل و قال را انداختن و گفتن بازم که اینجا افتابی شدی این بار چنان پدری ازت در میاریم که دیگه نتونی جون سالم به در ببری اونا شاهزاده را به باد کتک گرفتن با مشت و لگدون و زدن و از یه طرف به طرف دیگه پرت میکردن و دست و پاشو میکشیدن و حسابی آزارش دادن ولی شاهزاده همه این عذیت و آزارها رو تحمل کرد و صداش در نیومد بالاخره سپیده زد و کتوله ها ناپدید شدن و بدن زخمی و بیرمق شاهزاده وسط سالن رها شد شاهزاده اونقدر بیحال بود که وقتی اون زن اومد حتی نتونست چشماشو باز کنه اما وقتی زن آب شفا بخش و به سر و صورت و زخم بدنش پاشید درست مثل آدمی که تازه از خواب بیدار شده باشه قدرت و شادابی خودشو پیدا کرد وقتی چشماشو کاملا باز کرد دید که چهره زن به سفیدی برف و زیباییش خیره کننده است زن به پادشاه گفت بلند شو و شمشیرت رو سه بار روی پلکان قصر به نوسان در بیار. اون وقت تلسم قصر میشکنه. وقتی تلسم قصر شکست شاهزاده متوجه شد که اون دختر زیبا فرزند یک پادشاه که صاحب اون قصر باشکوهه. خدمتکارا اومدن و اطلاع دادن که میز صبحانه آماده است. بعد شاهزاده و شاهزاده خانم وارد همون سالن بزرگی شدند که در اون شاهزاده اون همه رنج و درد کشیده بود. بعد هر دو با خوشحالی و خوشدلی سرگرم خوردن صبحانه شدند و همون شب با هم ازدواج کردند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی